آرام شهر دل و جان تسکین هر پریشان روشن ز نور لطفه تو گشت شام تارم از خواستم رهانی بر ام رسانی یارب چگونه من این شکل تو را برارم ترنج باشم بر تو امید دارم ای رب مرا ای مو سو قرارم هستم اگر که خواست یا زار و دل چکست شدم از آن که هستی هل لحظه در کنارم یه الله یه کریم و یه منن یه غفور و یه غفظم یه شکور و یه جمبه ای را طوفان اگر بیاید دل را خونم نماید در بین رد و طوفان دل را به تو سپارم تنها ترین که باشم بر تو امید دارم ای رب مرا بانم ای